جلد که کتاب کافی صفحه 458 حدیث شماره 3 موقعی که امیر المؤمنین زحرا صلی اللہ رو دفن کردن این جملات رو گفته در نحج البلاغ خطبه 220 دو کوتاش اومده در کافی همش اومده که این قسمت در بحث کافیش هم هست من یه تیکر رو میخونم امیر خطاب کرد پیغمبر رو همون جایی که قلت سبری یا رسول الله انصفیتک ای رسول خدا در اثر داغ دخترت دیگه صبر من کاهش پیدا کرد و چی؟ فبعین الله تدفن و بنتو که سر را در پیش چشم خدا یا رسول الله من دختر تو رو مخفیانه دفن کردم و تو و حقها حق او را هضم کردن و بردن و تم نعو ارسوها ارسش رو من کردن و باز داشتند ولم یتباعد الهد اینو خوب دقت کنید ولم یتباعد الهد اون اهدی که با پیغمبر داشتن لم یتباعد تباعد از بعد یعنی چی؟ دور هنوز خیلی هم دور نشده بود خیلی هم نکسشده بود تازه پیغمبر رفته یعنی به همین زودی یا رسول الله احد با تو را این مردم گونه ای شکستن که باید من علی دختر تو را شبانه دفت کنم فبعین الله تدفن و سرا که و توزم حقها و ارثها ارسها ولم یتباعد الاهده